سوره واقعه از نظر ترتیب چه و سوره هست این سوره سوره مکی هست در مکی مکرم نازل شد و این سوره ارز به خدمت شما از سوره هایی هست که فضائل بسیار زیادی در این سوره آمده آن حضرت صلی علیه و وسلم خیلی اوقات در نماز صبح این سوره را تلاوت می فرمودند و قراءت می فرمودند و در این سوره هم ذکر انسانها هست های مختلف که بیشی گروه تقسیم می شوند در قیامت اول به صورت اجمال بعدا به صورت تفصیل آخر به صورت اجمال دوباره و در فضیلت این سوره می آید که عبدالله الله ابن مسعود رضی الله تعال عنو مریض بودند در زمان خلافت سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنو سیدنا عثمان به عیادتیشون آمدند و گفتند که حال شما چطور هست؟ حضرت عبدالله بن مسعود مریضی خودش را عنوان کرد که مریض هستم و حالم ناخوش هست عثمان رضی الله تعالی عنو گفتند که پیشنهاد دادم برای شما طبیب بیاریم گفت طبیب خودش منو مریض کرده اون طبیب حقیقی او برای من این مریضی را آورده و بعد سیدنا عثمان احساس کرد که این مریضی مریضی وفات هست و آخری مریضیش هست گفت که شما بعد از خودتون پسر نداری. عبدالله بن مسعود پسر نداشت فقط دختر داشت و یک صحابی فقیری بود قبلا هم از کردم سوره رحمان را در کنار خانه کعبه ایشون بود که تلاوت کرد و اون همه کتک خورد گفت که شما کسی را نداری قوم مخیش و, و تباری هم نداشت و فرزندانش فقط دختر بودند اجازه بدید که یه چیزی را تعیم بکنیم شهریه را تعیین بکنیم برای دختران شما که بعد از شما بالاخره ناناوری ندارند اونها چیزی داشته باشند حضرت عبدالله بن ابن گفت دختران من نیاز ندارند گفت چرا گفت چون که رسول الله صلی الله علیه و سلام به من یه چیزی یاد داده منم به دخترانم یاد دادم فرمود اون چی هست که یاد داده گفت که رسول الله فرمود هر کسی شب بعد از نماز عشا قبل از خواب سوره مبارکه واقعه را بخانند خدای تعالی او را از فاق نجات میده او را از گرسنگی نجات میده یعنی خداوند تعالی روزش را براش مقدر میکنه این انسان هیچ وقت محتاج نمیشه این هیچ وقت این انسان هیچ وقت دستش را به سوی دیگران بلند نمیکنه و نیازمند نمیشه خدای تعالی برایش از در غیب فراهم میکنه و این هم مجرب است علماء میفرمایند هر کسی که این رحمیشه همیشه می خاند خدای تعالی برایش حواله می کنه، خدا رزق و روزی را برایش میرساند. لذا این سوره سوره بسیار مبارکی هست و ابتداعاً مناسبت این سوره در پایان سوره رحمان شما خاندی تبارک اسم و ربی که دل جلال وال اکرام یعنی برکات دهنده فقط و فقط الله هست در پایان این سوره هم قبلا هم گفتم در سوره قمر گفتم این سوره ها بیشتر مدعا در پایان سوره میاد در پایان این سوره میخانید که سبح اسم رب فسبح بسم ربک العظیم دوبار این مدعا ذکر میشه یکی ما قبل رکوی آخر و یکی رکوی آخر فسبح،, فسبح بسم رب کل عظیم مناسبت به این صورتی که وقتی که برکات دهنده خدای از و است پس فقط نام او را و تسبیح نام او را بر زبان ورد کن پاکی او بیان کن پاکی او بیان کن یعنی چه یعنی او را از فرزند, شر... و از فرزند پاک بدان از همسر پاک بدان از شریک پاک بدان از همتا پاک بدان از نائب و معاونم، از هر چیز او را پاک بدان پس وقتی که برکات دهنده او هست فسبح بسم رب کل عظیم و این سوره را واقعا می گویند چون واقعا نامی از نام های قیامت است. معنی اشی هست حادثی که واقع میشه، حادثه‌ای که اتفاق میفته لذا الله عز و جل این حادثه را با این کلمات آغاز می فرمایید اما خلاصه را عرض بکنم ابتدا خداوند بعد از اینکه خبر میدهد که این واقعه و این اتفاق خواهد افتاد سه گروه را ذکر می کند این سه گروه اصحاب الیمن اصحاب الیمین اصحاب الشمال مقربین و بعد از این که به صورت اجمال خلاصین سی را ذکر می فرماید به تفصیل ذکر می‌فرماید و جزای هر یک را هم ذکر می‌فرماید بعد از اون خداوند چهار تا دلیل بر اثبات توحید ذکر می فرماید دلایل عقلیه هستند و بعد از آن مجدداً در پایان این سوره این سی را ذکر می فرماید گویا گفته میشه به ما که این گروه هستند هستن شما خودتون را آماده کنید میخواید جز کدوم گروه قرار بگیرید لذا توجه بفرمایید به ترجمه الله میفرماید اذا وقعت الواقع زمانی که واقع میشه اون واقعیه بزرگ اون حادثی بزرگ اون اتفاق بزرگ چنان حادثه‌ای که لیس لواقعتها کاذبه نیس برای وقوع آن وقوی آن حادثه هیچ دروغی در آن نیست یعنی کاذبه به بمعنی کذبه است یعنی لام هم بمعنی فی هست ليس لوقعتها لی یعنی فی وقعتها کذبون در وقی آن هیچ دروغی نیست خافظت رافعه بسیاری از انسان را پایین میارد و بسیاری از انسان را بالا میبرد خیلی ها که در دنیا صاحب جاه بودند، منصب بودند، قدرت بودند همه چیز داشتند مردم چشمشون به اونها خیره بود اونجا اونجا پایین میاند و خیلی ها که در دنیا جایگاهی نداشتند شهرتی نداشتند هیچ کسی اونها را نمی شناخ اونجا یک جایگاهه بلند و بالا به خود می گیرند این هست معنی خافظت و رافعہ جنانچه اللهم نسفيني فرمات اي هي خافزة رافعة ترفع اقواما وتضع آخرين اقوامي را بلند بلاند میکوند اقوامي كي در دنیا مومن بوداند اما بنا منشان بدون شهرات اینها میان بالا و اقوامی که اینجا همه چیز داشتند شهرت داشتند اما دین نداشتند ایمان نداشتند خدا را نداشتند اعتقاد نداشتند اینها میان فاعین خافضه الرافعه پایین می کند گروهی را و رافع بلند و بالا می کند گروهی را اذا رجت الارض و وبسطت الجبال بسى زمان وقور الله بیان می فرماید که این حادثه که اتفاق میفته کی اتفاق میفته اذا رجت الارض رجا زمانی که تکان میخورد به شدت زمین رجا تکان خوردنی قیامت کی میشه قیامت توام و همراه با زلزله شروع میشه اللهمی فرماید اذا زلزلت الارد زلزالها و اخرجت الارد اثقالها یعنی وقتی که زمین به زلزله میاد زلزله و تکان بزرگش رمیده و اخرجت الارد اثقالها زمین انبارهای و اون امانتهایی که در شکم زمین هست اونا بیرون مندازه یعنی مردها اجساد بیرون میاد از زمین بعد از اون زلزله و همه زنده میشه. لذا می میفرماید اذا رجت الارد و رجا وقتی که باش دت تکان میخورد زمین رجن تکان خوردنی و بست الجبال و بسا و زمانی که پودر میشوند کوها بسن پودر شدنی بس اصل میگویند که آرد شدن گندم را میگویند. گندم را وقتی که تو آسیا مندازی چطور پودر میشه و آرد میشه این کوها چنان آرد میشه چنان پودر میشه کوها وقتی که به هم کوبیده میشه تبدیل به ریگستانی و ریگی میشه و تبدیل به پودرهای میشه که بعضیها در هوا پراکنده میشه و بعضیها تبدیل به عرض کنم یک ریگ جاری میشه مثل سیل جاری میشه. الله می فرماد وبوست الجبال و بسسا پودر میشه کوها پودر شدنی فکانت حبا مبتف می شود غبار پراکنده در زم در هوا در جو کوح میره پراکنده میشه از بین میره. اما نتیجه انسانها چی میشه؟ شرایط و وضعیت انسانها در اون روز چطور هست؟ الله می فرماید و کنتم ازواجا ثلاثه شما سه گروه هستید سه تقسیم می از این سه گروه یکی هستید فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه اصحاب یمین میمنه یعنی یمین اصحاب یمین یا اصحاب میمنه بچی کسانی گفته میشه قال عطاء ومحمد ابن کعب اصحاب المیمن من اوتی او بیمینه اون کسی که نامه اعمال و صحیفه اعمالش به دست راستش داده میشه و اصحاب المشعمه اصحاب مشعمه یا اصحاب شمال من اوتی کتابه بیشمالهی تفسیر قرطبی میگینا اونی که کتاب و نامه اعمالش به دست چپ داده میشه خداوند اصحاب یمین را تعریف میفرماید ف صحاب میمننت ما اصحاب الميمنه، صحاب امین چقدر خوب خواهد بود وضعیت و شرایط اصحاب امین و صحاب مشمت ما صحاب مشم صحاب شمال چقدر بد خواهد بود وضعیت اصحاب شمال چرا اون را به معای مدح کردیم این را به منای ضم سیاق معلوم میشه قریه وجود داره؟ ادامه رو وقتی می خانیم می بینیم اصحاب یمیل خوبه و وضعیت اصحاب شمال بده خب این دو گروه شدن گروه سوم و سابقون، السابقون اونهایی که پیشی گرفتن از دیگران السابقون پس پیشی گیرندگان یعنی هی این از اون پیشی بگیر اون از این جلو بزنه رغابت بود در دنیا رغابت از چی جهت؟ از نظر عمل صالح از نظر طاعت و بندگی از نظر نزدیک شدن به خدای از دوواجل پس سابقون از سابقون اون هستن که در دنیا با هم دیگه مسابقه چی دارن مسابقه کار خیر دارن مسابقه برای صدق دادن مسابقه برای کمک کردن به مردم مسابقه برای نماز خواندن برای روزه گرفتن برای اول وقت به مسجد آمدن یک کسی می بینه که فلانی خیلی توه توفیق داره همیشه قبل از همه به مسجد میاد میگه من از این به بعد باید قبل از اون بیام فلانی توفیق در خوب صدقه میکنه من از این به بعد باید از او بیشتر بکنم تو دلش میگه همون کاری که حضرت عمر رضی الله تعالی با ابو کرد و بعدا اطراف کرد که نه به ابو نمیشه رسید در صدقه مال لذا سابقون این هستن ولی متاسفانه ما مسابقه داریم در دنیا مسابقه ما در مادیات هست در ماشین مدل بالا هست، در برج سازی هست در روز هست، در لباس هست در شک پوشی هست در بقیه مسائل هست. اینها سابقون نیستند. سابقون انهایی هستند که پیشی می گیرند از همدیگه در تعات و بندگی. اوعلیک المقربون خداوند این خاصان را بیان می فرمایند، این مقربان خاص فروردگار استند. تا اینجا احوالشم به صورت خلاصه بود، اما الان احوال به صورت تفصیل است. اول احوال اصحاب المیمنه بود، اما در تفصیل از احوال مقربان ادامه پیدا می کند. پس این را بیگن لف نشر غیر مرتب، مرتب نیست. به همون ترتیب، نیست اونجا اول اون بود اینجا چون آخر این نعمت باز در تفسیر از این آغاز میشه این امنوی تفنن هست الله می فرماید اولائک المقربون في جنات النعیم این گروه خاصان هستند و مقربان هستند در اون جناتی که سراپا نعمت هستند ثلتم من الاولین وقلیل من آخرین اخرین سلح یعنی دسته بزرگ، جماعت بزرگ، گروه بزرگ از اولین هستند و قلیل من الاخرین، گروه دیگر از آخرین هستند، ببینید تفسیرش چیه معناش چیه، آیا مقربان از پیشینیان هستند بیشتر، از های اولین هستند، و امت ما که امت آخری هست، از میان ما جز مقربان کم هستند، بعضی همین تفسیر را گفتند، بله همینطوره چرا؟ علت چیه؟ چون که در اولین در های اولین انبیازیت داریم هزاران نفر ده هزار یاست بیش از صد هزار نفر پیغمبران هستند این پیغمبران صدیقینی داشتند خاصانی داشتند شهدات، صالحین لذا خیلی جمیعت اونها نسبت به ما بیشتر هست اما در میان ما مقربان اونایی که بیشتر در خیر القرون بودن و در قرون بعدی که رابطه عمیق و خاصی با خدا داشتند نسبت به اونها کم هستند چون عرض کردم در اون گروه انبیا هستند شما 500 سال عبادت کنید به گرد پاک انبیا هم نمیرسید به این خاطر انها زیادا دو کمی کمین این یک تفسیر صلت من ال اولین یعنی دسته بزرگ از اولین و قلیل من ال آخرین تعداد اندکی از آخرین هست بله تفسیر مزهری اللہ مقازی سناء الله می فرماید السابقون السابقون يعني السابقون الى الاسلام والطاعة ومراتب القدر الى الله نسبت به اسلام هم اینا پیشی گرفتن ایمان طاعت و بندگی هم و از نظر قدر و پیش خدا هم خیلی بلند است وهم الانبیاء علیهم السلام ومن لحقهم من الامم لكمال متابعتهم اینا کی است انبیاء هستن خو مشخصه در های پیشین ده ها هزار پی، پیغمبر است در امت ما رسول الله صلی الله علیه و فقط پیغمبر است اونایی که ملحق به اون پیغمبران شدند و کاملا اطاعت کردند هر پیغمبری چند نفر شما حساب کنید اینجا فقط اصحاب و یاران رسول الله تابعین تبع تابین یا از زمانهای بعد خاصانی پس جمعیت امت ما کمتر خواهد بود این یک توجیه و یک قول قول دوم اینه که اینجا بحث بحث امت ماست از امت‌های پیشین خداون چیزی نفرموده بحث بحث امت رسول الله این سی گروه از امت هستند. پس سابقون سابقون که مقربان می فرماید مقربان این امت مراد هستند سلط من الولین یعنی دسته بزرگی از اولین یعنی از صدر این امت صدر اون امت خب مشخص خیر القرون است صحابه تابعین تب تابعین شاگردان اونها حل و مجرن اونهایی که به زمان رسول الله نزدیکتر بودن تا مایی که به آخر زمان به فتنها نزدیکتر هستیم مشخص مقربان اونها خیلی بیشتر هستند این قول ثانی هست ما ابن كثير مفرمايت والقول الثاني في هذا المقام وهو الراجح يشو مفرمايت از نظار من راجح هم همينه قول الدرس هم همينه وهو أن يكون المراد بقوله سلة من الأولين انك فرمو دستي بزرگي از يعني من صدر هذه الأمة از أولئين أمت وقليل من الآخرين يعني من هذه الأمة از آخرين أمت على ای حال الله مقربان رزق می فرمید و پاداش اونها الله می ثلت من الأولين وقليل و من آخرین دست بزرگی جماعت بزرگی از اولین امت در اون مقربان هست و قلیل من آخرین اما از انسان های بعدی از آخرین تکتوکی خواهد بود على سرور موضونه اینها جایگایشون در بهش روی تختهایی هستن که موضونه، موضونه یعنی زربافته، تختهایی که مرسع شده، مزین شده، آراسته شده با زر، با طلا، با انواع جواهرات، چنان تختهایی دارن، متکین علیها متقابلین، تکید آدم بر اون تخت ها رو هم قرار می گیرند یطوفو علیهم ولدان هم مخلدون دور می زند بر آنها میچرخد اطراف اونها پسر بچهای که مخلدون یعنی همیشه همینطور نو عمر و نوجوان هستند چه کار می اینا خدمتی می مقربان را با چی خدمت میکنن به اکواب و اباریق به اکواب به وسیله ظرف یا کاسه و اباریق اباریق جمع ابریق است بعضی ترجمه میکنه آفتابه این اشتباه هست در عرف ما آفتابه چیزی نیست که تو آفتابه کسی آب بخورد اصلش در زبان عربی ابریق میگن منله و خرتوم اون ظرفی را میگن که خورتوم داره یعنی نوک تیزی داره خب آفتابه هم هست پرچم هست لذا اباریق پارچه هستند که به دستشون هست و کأس من معین و جامه های که از شراب خالص از شراب خالص به دست اون پسر بچه ها هست و پذیرایی می کنند به دست اون نو جوان ها هست و پذیرایی می کنند از این بهشتی ها اما شراب اونجا با شراب اینجا فرقی دارد فرقش اینه که لا يصدعون عنها انها درد سر نمیگیرند از این شراب ولا و لا و ارز به خدمت شما بر عقل اونها غالب نمی شود شراب من منظور اینه که سرگیچه نمیگیرند، گیرند بلا نسبت نشه نمیشن، مست نمی چون در دنیا کسانی که شراب مصرف می و بالخصوص اونهایی که افراد میکنن در مصرف شراب یه چیز بدیهی و مسلم هست که هم در دسر می گاهی می بینیم که سر رو کنم که آقبت اینها بی بیمارستانها کشیده میشه شه میدهشون داغون میشه خیلی ها وقتی که شراب زیاد میخورن خورند می, خورن، می میرن، مسموم میشن جان میدن دند گا گا تو اخبار می که در یک بزم شبانه مثلا خیلی افراد کردند و چندین جوان و نوجوان راهی بیمارستان شدند بعضیها خوب شدند بعضیها مردند پس این مشکلات را داره و همچینین شراب دنیا چی داره؟ عرض به خدمتش ما سکر داره یعنی انسان حالت خودش را تعادل خودش را از دست میده و حتی بعضی حد داستان داستانهای زیادی هستن جالا مناسب نیست ذکرشون بسیاری هستن که نمیتونن خودشون را کنترل بکنن از نظر وضوح از نظر دستشوی تعادلشون مثل بچه هر چیزشون رها میشه اینای که افراد میکنن در شراب خاری و میخاری لذا این مذرات هست در دنیا و همچنین گاهی اقلشون غالب میشه میزنن چاقو هم دیگر را میزنن درگیر میشند چند بار تو همین عروسی ها مراسم ها میشنویم که جوان ها در چرا میگن شراب خوردن به حال خودشون نبودند بعضی ها میبینید گاهی میشنوید که خطرناکترین تصادف را میکنن ماشینشون واجگون میشه می چیز مصرف کرده بود پس میبینید مزرات بیشماری در دنیا داره اگر انسان اینها را دنبال بکنه میبینید که واقعا همونطور که فرمودن یسالونک الخمر الخ در ادامه می فرماید که اسم هما اکبر من نفعهما گناهشون و ضرر و زیانشون از نفعشون مراتب بیشتره اما شراب اونجا نه اصلاً ضرر نداره ضرری که اینجا هست که صداع میگیره انسان درد سر میگیره لای صدعون انها از این درد سر نمیگیرن و ضرری که اینجا هست که اقل انسان زیر پرده میشه اقل انسان مخمور میشه و اقل انسان از بین میره انسان تعادل خودش را از دست میده، مست میشه، نشه میشه بلا تشبیه، اونجا این هم نیست. ای لا تصدع رؤوسهم من شربها ولا يغلب على عقولهم ولا يذكرون منها تفسیر خازن. یعنی سرهاشون درد نمیگیره و بر اقلشون غالب نمی شوند و سکر و نشه هم نمی شوند. رضا می فرماید لا يصدعون عنها درد سر نمی از آن و لا ينزفون و همچنین اقلشون را از دست نمی دهند. و فاکهت مما ی و میوه میوه کدوم میوه هرچی که انتخاب بکنند اختیار بکنند این مقرباند. ولحم الطير مما يشتهون و گوشت پرنده پرنده شکار اونی که دلشون بخواد الله بهشون این آیات می فرماید وحور عین وهمچنين حوریهای هست اونجا برای اونها که عین چشمه های درشت و چشمه های آهویی دارد چنان زیبا هستن که امثال اللؤلؤ المكنون مثل اون مرواریدی که پنهان از مروارید پنهان مکنون اونی که در غلاف هست اونی که در خرجین هست اونی که هنوز گرد و غباری روشی ننشسته وقتی که ظاهرش میکنی یک درخشندگی داره که چشم انسان خیره میمانه لذا زیبایی اون حوری ها این طور هست الله میفرماید این نعمت ها را به مقربان ما میدهیم جزا ام بما کانو عملون این پاداششون هست به سبب اون که عمل کردند، اما ارز کردن به مکان و عملون سبب ظاهری هست. علت اصلی که خداوند الله به من و شما بهشت بده فضل پروردگار است. و لطف انایت او هست. به همین خاطر رسول الله صلی علیه و وسلم فرمود از خداوند فضلش را بخواهید. هیچ وقت نگی که خدا یا درباره من عدالت بکن، من دارم، عمل میکنم دارم کار میکنم دارم زحمت میکشم که اون غرق بشه می همیشه میگه خدای من فضل و لطفت را میخام ما هر چی که بکنیم عرض کردم تمام اعمال زندگی ما به اندازه نعمتی به اندازه ناخون هم نمیشه شما ببینید گاهی یک انسانی یکی از این نعمت هایی که خدا بهش داده چشم را داده گوش داده گاهی به خطر میفته دکتر میگه اگر جراحی نکنی از بهم میره مثلا جراحی کجا میکنه اینجا جراحی نمیکنه آلمان جراحی میکنه پول نداره ولی بالاخره ماشین داره منزل داره تمام ماشین زمین منزل همه را میفروشه چی در دنیا داره آماده است. بده تا این نعمت را از دست نده پس معلوم میشه که این نعمت هایی که خدا به ما داده ما پونست سال بیاییم و سر به سجده بذاریم ما نمیتونیم پاسخ یک نعمت خدا باشیم تمام اون چی که خدا به ما داده از مال و منال اینها رو ما میخواییم به خاطر یک چشم فدا بکنیم یک گوش میخواییم که هزینه بکنیم پس به ما کانوی عملون سبب ظاهری از اعمال من و تو سبب ظاهری از سبب حقیقی فضل پروردگار است اللہ می لا يسمعون فيها لغوا ولا تافیما ان مقربان در بهشت نمیشنوند هیچ نو لغوی هیچ نو سخن بیہودی ولا تافیما و هیچ گناهی که ان فکر اونها مقدر بشه، الا قیلن سلاما سلاما مگر این گفته سلام سلام هم دیگه فقط سلام میگویند برای هم دیگه دعای سلامتی و دعای خیر میکنن، ببین گاهی در دنیا هم بعضی بندگان خدا هستند نعمت زیاد دارند خدا سرمایه داده، نعمت داده، پست داده، جایگاه داده آغا وزیره، آغا مدیره ولی یک سخن ناگوار و نادرست می شنود اصلا شب تا صبح خوابش نمیاد انسان یک کلمه نمی خواد بشنود اونجا الله همین نعمت را هم ذکر می که اصلاً فکر شما مقدر نمیشه، برای لحظه ناراحت نمیشید، فقط سخن خوش میشنوید، سخنی که سرور میاره، خوشحالت میکنه، سلام سلام و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین این نعمت هم مال مقربان بود اما اصحاب الیمین اونهایی که نامه اعمالشون به دست راست داده میشه اونجا خاندیم اصحاب المیمن بیان این جماعت الله میفرمه ما اصحاب الیمین چه خوب از اصحاب یمین فی صدر مخضود در باغاتی هستن که درخت های صدر هست صدر مخضود مخضود میگوین خزد شجر یعنی خارش راد خارش را بیرون کردند صدر دنیا و کنار دنیا طوری هست که شما برید میوهش را بچینید خار داره امکان داره دستتون زخمی بشه اما صدر اونجا نه مقضود است یعنی از خار خالی هست بدون خار هست و طلح منضود و موز موزی که منضود هست منضود یعنی ته هست درست و زیبا چیده شده موز واقعا تو همین دنیا انسان میبینه که چطور خدای تعالی کنار هم ها را با چه زیبایی چیده و ظل ممدود ظل ممدود یعنی سایه طولانی اونجا خورشید نیست که سایه باشد منظور جایی که انسان اونجا میخواد خوش بگذرانت اونجا خوش آب و هوایش از بین نمیره همیشه ماندگار است سایه اینجا شما گاه میرید جای خوب انتخاب میکنی زیر سایه درخت اما یک ساعت بعد از بین میره اونجا نه اون فضای خوب ممدود هست ماندگار و ما این مسکوب و آبی که برایش ریخته میشه آب زلال و فاکهت کثیره میوه های زیادی که لا مقتوعه ولا ممنوعه نه اون قط میشه الان در دنیا خیلی میوه ها قط میشه مثلا الان موسم فلان میوه نیست این میوه در دسترس نیست و خیلی از میوه‌ها در دنیا ممنوعه است آقا مریضه دکتر میگه فلان نخور اما اونجا نه مقتو هست و نه ممنوعه هست و همشینی مثل جدیمون آدم علیه السلام برای ما هیچ چیزی اونجا ممنوع نیست و فروش مرفوعه و اونجا فروش مرفوع فروش مرفوع دو معنا هست یکی قبلا شما خواند رختخواب رختخواب بلند و بالا اما بعضی میگن فروش به معنای همسر هستند چون که در محاوره عربی به همسر فراش گفته میشه اینجا هم ادامه قرینه هم همین را میگه و فروش مرفوعه همسرانی هستن که جایگاهشون بلند هستن اِنَّا اَنْشَعْنَاهُنَّا اِنْشَاعًا از این آیه استدلال میگیریم میگیم هوریهای بهشت همون جا خلق میشون همانا ما اونها را پیدا کردیم پیدا کردنی یعنی چه؟ یعنی همون جا پیدا کردیم ابتدعنا هن جدیدا من غیر ولادت ولا خلق اول روح المانی میگه یعنی اون هوریهای بهشت همونجا پیدا شدن، از کسی متولد نشدن، و در دنیا که خلق اول باشد، همونجا نداشتند وجود نداشتند فجعلناهن ابکارا، اونها قرار دادیم باکره، عربا، اطرابا، عرب یعنی محب، یعنی اونها دوست دارن را دلداده شوهر هستن، اطراب یعنی هم سن و سالشون هستن، این نعمت مالکیه لی اصحاب الیمین مال اصحاب الیمینه اصحاب, الیمینه اصحاب الیمین کسانی که نامه اعمالشون بی دست راست عامه مؤمنان مراد هستند عموم مؤمنان مراد هستند مؤمنانی که در دنیا خلاف نمیکنند، کنند مرتکب حرام نمی شوند مرتکب معاصی نمی رب خودشون رب اندازه وسعشون طاعت و بندگی میکنند. واصحاب الشمال ما اصحاب الش... ها ثلثه من الاولين وثلثه من الاخرين دسته بزرگی از اول این امت جزء أصحاب اليمين ثلث به معنی انبو جماعت بزرگان و ثلثه من الاخرين و دسته بزرگی از آخرین از اخر إن امت جزء این أصحاب اليمين است اما أصحاب الشمال اللہ تعالی نجات بده من و شما را از اصحاب شمال خداوند ذکر اصحاب شمال می فرماید و اصحاب شمال ما اصحاب شمال اصحاب شمال یعنی اونهایی که نام اعمال به دست چپ می گیرند چه بد هست وزیعت اصحاب شمال فی سموم و حمیم انها در سموم هستند سموم اون بعدی را میگن که اون بعد از آتش میاد و سوزان است و مثل سم کشنده هست. یعنی اینها زیر چنام بعدی قرار دارند که تمام بدنشو می سوزد. السموم، الریح الحارة، التي تأثر تأثير السم، اونی که اثر میگذارد اثر را الله میفرماید فی سموم و حمیم حمیم آب جوش را میگن یعنی هم این انسان بدبخت تو آتشه و هم تو آب جوشه آب جوش روش میریزن آب جوش تو دهنش میریزن که تمام رودهاش را تکه تکه تک می کنی و ظلمی احموم و صایه برش هست اما سایه از دوده اینات داشته باشه انسان گاهی دنبال سایه میره سایه گیرش میاد که میگه کاش سایه نبود سایه که از دود باشه دود گرمتر دیگه هوا رو گرمتر میکنه لا بارید و لا کریم یعنی این تاکید اون یعنی خونکی اونجا نیست و کریم به صورت راحت نیست کریم یعنی راحت نیست یا اینکه که کریم اینه که انسان اونجا راحت نیست خوش نمی گذرد انهم کانو قبل ذلك مطرفین اینا چه گناهی کردن که این در عذاب می سوزند الله می فرماید اینها در دنیا خوشگذران بودند اهل طرف بودند اهل طرف یعنی اهل خوشگذرانی هم غم می اینه که در روز دنیا رو خوش بگذرونیم خیلی از افراد هستن میگیم که نکنید گناه معصیت نکنید میگه دنیا در روزه یعنی تو این دروز انسان از هیچ گناهی دریغ نکنه. هر چی میتونه عیش کنه. آ. شهری هست الان شعر را فراموش کردم. اکبر پادشاهی هست. اکبر میگه اکبر به عیش کوش. که دنیا را دوامی نیست یا بقایی نیست. میگه تا جای میتونی کیف کن، تا جای میتونه عیش و نوش کن. که دنیا تا آخر نیست اسم بالاخره تا روزی که تو دنیا هستی از هیچ شهوتی از هیچ لذتی از هیچ خوشی دریغ نکن اینا رو میگم مطرفین انسان های خوشگذران اما خیلی ها هستند که لذت و خوشیشون را به خاطر امر خدا فدا میکنند خیلی هستند که شهوات خودشون را زیر پا میگذارند چون رب را میخوان این کنند اینا مترفی نیستند مترفین نی نیستن. مترفی نیستن که هر خوشی به دست میاد جلوش میاد کوتاهی نمی کنند لذا الله میفرماید انهم کانو قبل ذلك مترفین همانا اینها بودند قبل از این در دنیا خوشگذران از اوصاف دیگرشون و کانوا یسرون علی الحنس العظیم اینها بودند اصرار میکردند بر از برگناه بزرگ گناه می کرده اصرار بر گناه گناه خودش مهلک از انسان را می میکند اصرار بر گناه مداومت بر گناه انسان را تباه میکند بعضی افراد هستن گناه میکنن اما یک بار گناه میکنه دو بار گناه میکنه دوباره نمی کند. اما بعضی هستن که شغلشون گناه است خدا اینها را نجات بده این بده مثلا همیشه عادتش هست شراب خاری اصلا معتاد شده این دیگه یو علی الحنس العظیم هست عادتش هست بی دوباری علی عزو الله. عادتش هست دزدی شغلش هست اصلا بعضی ها معتاد گناه می شوند معتاد بعضی وقتها مراجع می معتاد فیلم های مبتزل میشوند بعد اون گناه را نکنند آرام نمی گیرند اینها کسانی هستند که یسرونا علی الحنس العظیم اینا اصرار دارن بر گناه گناهه بزرگ. پس اینها اینها داشته باشید که هم اخلاقشون خراب بود، هم اعمالشون خراب بود، هم اقیدتشون خراب بود. انهم کانو قبل ذلك مطرفین و اخلاق هست و عمل هست. وكانوا يسرون على الانزلازم انهم اخلاق وعمل حس وكانوا يقولون ان عقيده حس وكانوا يقولون اینها در دنیا می گفتن ایدامتنا و کننا ترابا و عظاما آیا ما وقتی که بمیریم و تبدیل بشیم خاک و عظام استخان اینا لمبعوثون آیا دوباره ما مبعوث میشیم آیا دوباره ما از قبرها بلند میشیم او آباؤنالاولون یا اینکه پدران اولین ما آیا دوباره زنده میشون الله جواب اینها را میده جواب این سبک سرها را که فقط جلو چشمشون را می و با این عقل کوتاه خودشون حزاوت می کنند الله می فرماید قل ان الاولین والآخرین به اینا جواب بده ای حبیب من ان الاولین والآخرین همانا انسان های پیشین و انسان های بعدی انسان های آخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم البته همه و همه جمع می شوند الا به من اعلی است بر میقات بر وقت روز مشخص روزی را خدا مشخص کرده همه اونجا جمع می اون وقت حال شما چی خواهد بود ای کسانی که قیامت را تکذیب میکنید. ثم انکم ایوها ضالون المکذبون سپس شما ای انسان های گمراه و تکذیب کننده لآکلون من شجر من زقوم می خورید از درختی که نامش هست من زقوم از زقوم هست زقوم درختی هست که بسیار تلخ است. اصلا از گلوب پایی نمیره اما انسان چنان گرسنه هست و چنان حالت جوع و گرسنگی داره که شکمش را پر میکنه الله میفرماید فما من منها البطون پر کننده هستن از اون شکمها را میده ها را میدهشون را و شکمشون را پر میکنند بعدا آب میخواند تشنی میشن، آب هم نیست اینقدر تشنی مجبورن آبجوش جوش بالا بکشند چنان آب جوشی که تمام میدو رودو درون اونها را تمام را میسوزوند اللہ میفرماید فشاربون علیه من الحمیم مینوشن برآن آبجوش جوش مینوشن از آبجوش جوش فشاربون شرب الهیم پس می نوشند نوش می نوشند اونها مثل نوشیدن شطور مریض ببینید شوربه الهیم مریضی هست در شطور کسانی که با شطور سر و کار داشتن بهتر میدونند که گاهی شطور به این مریضی مبتلا میشه هرچی که آب می می میخوره هیچ وقت احساس رافع تشنگی نمی کنه بعضی میگن اون کیسه اش اون مشکیزاش که تو کهان هست او پاره میشه چون شطور اونجا معمولا ذخیره میکنه اون که پاره میشه هر چی میخوره میاد تو کم آخر باد میکنه میتره که میمیره از بس که آب خورده این مجرم این اصحاب المشعما در جهنم آبجوش ها مثل هیم می خورد مثل این چطوری که اینطور مریض هست فشاربون شرب الهیم اللہ می فرمه هذا نزلهم یوم الدین در روز قیامت این هست مهمانی اونها این هست پذیرایی اونها لذا این سه گروه بودند که خداوند از و احوالشون را بعد از اجمال تفصیل بیان فرمود حال چار تا دلیل اقلی که این دلایل اقلی دال لبر توحیدند، دال لبر این هستند که ای انسان بغیر از خدا کسی را عبادت نکن، کسی را سجده نکن، از کسی کمک نخواه، چار دلیل ذکر می فرماد، یک، نحنو خلقناکم، ما شما را آفریدیم، ما شما را آفریدیم، در آفرینش اول، فلولا تصدقون چرا شما تایید نمیکنید آفرینش دوم را یعنی قیاس بکن به همون آفرینش اول همون طور که اول تو را خدا خلق کرد بعدا هم خلق میکنه فلولا تصدقون چرا تصدیق نمیکنید بعث را و بعضی میگن چرا تصدیق نمیکنید توحید را یگانگی خدا را حال خدا که می ما شما را آفریدیم چطور آفرید؟ افرائیتم ما تمنون شما خبر بدهید آن منی که شما می اندازید اون منی در جایش در محلش میفته و به صورت طبیعی نیست انتم تخلقونه و ام نحن الخالقون آیا شما را خلق می کنید یا ما خالق؟ اگر به خود بخود بود به دست خود انسان بود هر انسانی دارای فرزند می شود. خیلی از انسانها هستند که فرزند ندارند. خیلی از انسانها هستند که دوست دارن فرزند پسر داشته باشند ندارند. خیلی هاستند هستند که دوستدار فرزند دختر داشته باشند ندارند. پس معلوم میشه که بقیه کار خداست و بعضی ها را هم خدای از زواجل نمییده. خدا میخواد نشون بده و الا خدا تعالی به بقیه که داده چرا این چندتار را نتونه بده خداوند نشون میده که اولاد که به کسی خدا میده به صورت طبیعی نیست و اگر طبیعی میبود همه داشتند پس بدونید که پشت سر یک قدرتی هست لذا می میفرماید أنتم تخلقونه. آیا شما خلق میکنید اون انسان را اون جنین را در شکم مادر ام نحن الخالقون یا ما خالق ما هستین که پیدا میکنیم نحن قدرنا بينكم الموت بعد از که ما آفریدیم ما خلق کردیم ما مقدر کردیم بین شما مرگ را ما شمارا آفریدیم و ما نحن به مسبوقین الله میفرماید ما مغلوب هم نیستیم. مسبوق یعنی آجزز مغلوب ببینید دو نفر با هم مسابقه میدن یکی میشه سابق یکی آجز میشه میشه مسبوق دیگه. خدا میفرماید ما آجز نیستیم که روز قیامت شما در برید. شما فرار کنید. شما مخفی بشید. نه و ما نحن به مسبوقین یعنی ما مغلوب و آجز. نیستیم اما آجز نیستیم از چی آجز نیستیم؟ از اینکه امسال ش... امثال شما را دوباره پیدا کنیم شما را موت میدیم گروه دیگر را میاریم و ما نحنو بمسبوقین علا انو بدل امثالکم بر این که ما تبدیل بکنیم به امثال شما مثل شما دیگر انسان بیاریم و ننشی اکن فیما لا تعلمون و ایجاد کنیم در اون چیزی که شما نمیدانید مثلا توجه داشته باشید ست سال پیش از اون انسان هیچ کسی نیست خدای اززوجل جایگوزین اونها ما را قرار داد ست سال بعد هیچ کسی از ما هم نخواهد بود پس خدا آجز نیست که امثال ما و اشباه ما دیگه بیاریم و لقد علمتم النشأة الاولى همانا شما همه انسان ها می دونید پیدایش اول را که اول خدا پیدا کرد از نطفه پیدا کرد چه مراحلی را جنین سپری کرد فلولا تذکرون چرا پند نمی گیرید چرا از این پیدایش ها هم بر توحید استدلال نمی گیرید هم بر معاد استدلال نمی گیرید هر دو استدلال را به تفسیر خاندیم چرا استدلال نمی گیرید افرائی ما تحرسون این دلیل عقلی دوم هست الله می فرماید خبر بدید به من از آنچه که شما میکارید، شما بازر می کنید تزرعون تَزْرَعُونَهُ ام نحن نَحْنُ آیا شما زراعت میکنید یا ما ایم زاره و کاشتکار ما میکاری ما ایم زاره لون شاولا جعلنا و حطامه اگر ما بخواهیم همون بزری که شما ریختید ما اون را چی کار می کنیم؟ لجعلناه حتاما ما اون را ضایع می کنیم ما اون را ضایع می کنیم یعنی هیچ چیزی اونجا نمی روید حتام اصل اشغال را می چیزی که له شده باشد ریز ریز شده باشد فزلتم تفکهون انا لمغرمون اون وقت شما میگردید چی میگویید انا لمغرمون ما زیر بار رفتیم ما ورشکست کردیم چقدر من بذر خریدم چقدر هزینه کردم هیچی در نیامد مثلا خدا میفرماید اگر محصولی در میاد مایمو ما محصول را در میاریم نه اینکه شما بل نحن محرومون اون وقت میگید بعد که ما محروب شدیم خدا از ما گرفت افرائیتم الماء الذي تشربون دلیل سووم عقلی خدا میفرماید شما به من بگوید از آبی که شما منوشید انتم انزلتموه من الموزن ام نحن المنزلون آی شما فرود آوردید و پاین کردید اون آبر از آبر یا ما پاین کردیم خدا از که از آبر میاره ما انسان ها گاهی عاجز میشیم شیم گاهی بار نم نمی نمیدونیم چیکار بکنیم همه وحشت میکنند قحط میاد می بیماری ها میاد می تاون ها میاد می لذا الله اس کہ ابرا از عبر میده لو نشاء اجلناه اجاجا فلولا تشکرون الله میفرماید اگر ما بخوایم همین ابرا تلخ میکنیم آب آمده شیرینی نیست تلخه نه برای زمین, زمین تون درد میخوره نه برای آشامیدن خود شما فلو تشکرون چرا شما انسان ها شکر نمی کنید تشکر نمی کنید افرائیتم النار دلیل چهارم افرا ای به من خبر بدهید از آتش اللتی تورون آن آتشی که شما روشن می کنید اعنتم انشعتم شجرتها آیا شما ایجاد کردید درخت اون آتش را ام نحن المنشئون یا مایم ما کی ایجاد کردیم ایجاد کننده ببین درخت آتش به چه معنا؟ دو تا توضیح ارض می کنم بعضی می منظور همین درخت هایی که خشک می شن بعدا مردم اینها را هیزم درست می کنن. چون چون ها آتش را با چی درست می با هیزم با چوب این درخت را شما درست کردید یا ما درست کردیم. پس مواد آتش را ما درست کردیم. یا امروز مثلا آتش را به وسیله نفت به وسیله گازویل به وسیله سوخت شما اینها را درست کردید یا ما درست کردیم. این یک توجیه توجیه دوم اینه که در زمان قدیم در بلاد عرب دوتا درخت بودند دوتا درخت جنگلی یکی اسمش بود مرخ یکی اسمش بود عفار مرخ و عفار این دوتا درخت ضد و نغیز بودند عرب ها که مسافرت می اینها رو می شناختند. گاهی نیاز می شد تو جنگل نیاز به روشن کردن آتش یک شاخ از مرخ میگرفتند یک شاخ از افار اینها را به هم میزدند آتش روشن میشد بعضی میگن اشاره به اون درخت خاص است اما مالما کبریت گوگرد سنگ های زا اینها بالاخره جایگزین همون مرخ و افار الله میفرماید انتم انشأتم شجرتها آیا شما در اختشرت درست کردید ام نحن المنشئون یا ما ایم ایجاد کننده آن نحن جعلناها تذکرتا و متاعا للمقوین الله می ما آن درخت را قرار دادیم باعث پند و فائده و متاعا للمقوین و همچنین کالای برای مسافران جنگل ببینید اون درخت هم پندی هست انسان از اون بر قدرت خدا نتیجه میگیرد و هم باعث بهرهگیری و باعث استفاده مسافران هست. پس وقتی که همه قدرتها به دست الله هست اولاد خدا میده آب خدا میده ح و کشت را خدا می رویاند آتش را خدا میده، پس ای بندگان فسبح باسم ربی کل عظیم پس نام عظیم پروردگارت را از ایوب پاک بدان از شریک پاک بدان از فرزند اولاد پاک بدان فلا و به مواقع نجوم در بخش آخر خدای عز و عظمت قرآن را بیان می فرماید. اللہ می فرماید سوگند به مواقع نجوم به مواقع ستاره ها مواقع نجوم یعنی غروب ستاره مفسرین می فرماید موقع ستاره انجایی هست که ستاره غروب می کند چرا خداوند به غروب ستاره سوگند یاد کرده به دلیل این که غروب ستاره دلیل توحید است غروب ستاره چیه؟ دلیل توحید است چطور دلیل توحید بسیاری از انسانهای کم فکر ستاره پرستند ماه پرستند خورشید پرستند لذا وقتی که ستاره غروب می کند معنیش اینه که این همیشه نمی ماند این ناپدید میشه گای از سشمان ما ناپدید میشه الان ستاره نیست اون ستاره پرست الان کیلس ادا می کند به همین خاطر ابراهیم الله از غروب استدلال گرفت بر توحید فلالما رأش شم سبازغتا انشاءاللہ شما می در سوره انعام که را ردید گفت قال حاذا ربی این رب من هست فلما عطلت قال اني لا احب الاافلين وقتی که افول کرد غروب کا گفتنا من اونیکه غروب بکنه دوست ندارم ماه را هم ستاره را هم پس ابراهیم بعد از اینکه خورشید و ماه و ستاره غروب کردند چی گفت گفت که اینها همه غروب میکنه اینها را نمی خام ان وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض من روخم را ام را راست می کنم برای اون ذاتی که خالق این آسمان ها و زمین است و او همیشه هست و مثل ستاره ها افول نمی کند بنابراین پس مواقع النجوم کنایه از چیه؟ کنایه از توحید الله می فرمایه اللہ ما آلوسین جور تفسیر کرده به مواقع النجوم یعنی بی مساقت کواکب السما. خدا که به مواقع نجوم سوگند یاد کرده یعنی به چیزی که بجایی که ستاره میوفته و مغاربها به غروب ان بال بالقسم چرا این بخش ستاره به قسم یاد شد و تقسیس شد بما فی غروبها من زوال اثرها چون غروب که بکند اثرش از بین میره و دلالت على مؤثر وجود مؤثر دائم لا تغیر این دلالت میکنه بر وجود یک موثر دائمی که هیچ وقت تغییر نمیپذیره ولذا استدل الخلیل علیه بالوفو بالافول علی وجود الصانع جل و علا به همین خاطر ابراهیم خلیل الله از افول غروب ستاره بر ذات پروردگار و وجود پروردگار استدلال گرفت پس از غروب ستاره بچمی به چه نتیجه می رسیم که الله همیشه وجود داره پس این قسم به خود خدا به ذات خدا به توحید خدا میشه فلا به بمواقع نجوم این نکتره هم خدمت شما اضافه بکنم که ستاره گرچه تصریح نیست ولی بسیاری از کتابها نوشتن نوشتند که ستاره ها تأثیراتی دارند ستاره ها تاثیراتی دارند ماه و خورشید هم جز همین ستاره ها هست جز نجوم است خورشید ستاره بزرگی هست تاثیر خورشید را که همه ما احساس میکنیم به ما انرژی میده به زمین انرژی میده حرارت میده گرم می کنه زمین را و از کنم روشن میکنه زمین را بدن انسان کمبودهایی که داره کمبودها را خیلی از ویتامین ها هستن دکترها میگن که مردم چون این روزها جلوی خورشید نیستند این نوع کمبودها در بدن ایجاد میشه مثل ویتامین دی که با چی با همین انرژی خورشیدی اون جبران میشه لذا خیلی فواید به انسان از چی میرسه از ستاره می از خورشید میرسه خیلی از اثرات ماه در زمین هستند بعضی از اثرات همین حساب هست همون نور چون در وقت شب انسان نیاز به نور زیاد نداره همین نور ماه کفایت میکنه بلا تسبیب مثل این هست که شما می خواهید شب بخوابید لامپ را خاموش میگید خیلی خوا... تاریکی را دوست ندارید چیکار میکنید چرا خواب میزارید که نور اندکی داره اون راحت هست پس در واقع ماه مثل چی هست؟ چرا خواب است؟ یعنی در شب اون نیاز هست همون اندازه ضرورت هست اما ماه تأثیراتش میگوین در دریا موجها را وقتی که یک زمان خاصی و یک نوع از به خدمت شما انرژی خاصی در دریا میاندازن موج ایجاد میشه ستاره ها هر یکی بازی تجربیات همینه میگم فلان ستاره که طلو میکنه باران میاد. به همین خاطر عرب ها میگفتند متر نا بنا اکزا. فلان ستاره که آمد آب باران آمد. بس ستاره ها تحصیلاتی دارند. اما این تاثیراتشون را خدا به اونها داده. خودشون چی باشند؟ مخلوق خدا هستند. و بعضی تاثیرات دیگه هستن که ما انسان ها هنوز نفهمیدیم بسیاری از ستاره شناسان دنبال کردند البته در کتاب ها نوشته که ستاره شناسی نوعی از علم سحر است کسی که علم ستاره شناسی را دنبال کرد سحر را دنبال کرد چرا چون اعتقاد انسان و باور انسان به این زواهر میشه افرادی که ستاره ها را زواهر را پرستش و عبادت کردند چون به بعضی از تاثیرات پی بردند لذا الله عزوجل می فرماید این ستارهک تاثیر خودش را دارد ولی افول میکنه غروب میکنه پس این چیه در مقابل خدا لذا الله می فرماید و انه لقسم لو عظیم همانا این قسمی هست سوگندی هست که اگر شما بدانید لو تعلم و نظیم، این قسم قسم بزرگی هست پس خدا به این قسم بزرگ قسم خورد که چی؟ انه لقرآن کریم این قسم برای عظمت قرآن است. همانا این قرآن قرآن معززی هست فی کتاب مکنون در کتاب مکنون یعنی پنهان نوشته شده پنهان در لوح محفوظ بوده الله اونجا نوشته این را لا یمسوه الا المطهرون لا یمسوه دو انا دارد یکی خدا خبر میده میگه دست نزده این را مگر پاکان پاکان کی هستند فرشتها یعنی جنات و شیاطین که ناپاکند اونها دستشون به قرآن نخورده اونها دست برد نزدند اونها هیچ نو تصرفی نداشتند. هرچی هست از طرف الله هست محفوظه دوم اینی که این نافی هست به معنی نحی دست نزند قرآن را مگر انسان های پاک یعنی انسان های ناپاک بی وضوع جنوب به قرآن, دس قرآن دست نزنند. زن که معذورن به قرآن دست نزنند. چرا؟ تنزیل من رب العالمین این کتاب کتاب رب العالمین ہے نازل شده از جانب رب العالمین اف بهذا الحديث انتم مذهنون اللہ می فرمائے چنین سخن بزرگی چنین کلام بزرگی را شما از این ایراد میکنید ای مجرمان ای مشرکان اف بهذا الحديث زاجر سر زنشے ای بیئس سخن شما معرض مد... انتم معرضون مدهنون, مدهنون ببینه هست تفسیر قرطبی میگه آیا از این سخن شما روی گردانی میکنید و به جای اینکه سهم شما از قرآن ایمان به قرآن باشه عمل به قرآن باشه تذکر از قرآن باشه پندگیری از قرآن باشه از معایزه قرآن باشه سهمتون را تکذیب قرار دادید شما میگی سهم من اینه که من این را تکذیب میکنم قبولش نمیکنم این قد بدبخت شدی؟ و تجعلون رزقکم به من سهم شما، نصیب شما سهم شما و نصیب شما اینه که انکم تکربون شما این کلام پاک را تکذیب میکنید زا بدبختی برای شما هست بنابراین الله عزوجل بیان میفرمد که تو ای انسان تو انسان آجزی هستید تو چرا گوش به فرمان خدا نیستی تو اینقدر آجز هستی که وقتی خدا میخواد جانت را بگیرد همه شما انسان ها دور, دور بری اون مریض جم میشید اون محتضر جم میشید چرا نمیتونی روحش را برگردانید چرا نمی جلوی مرگش را نمیگیرید خود شما آجزید الله میفرمد فلاولا اذا بلغت الحلقوم چرا وقت که نفس می رسد به خلق و میرسد. به می رسد وقتی که انسان به خرخره می رسد وانتم حین اذن تنظرون و شما در آن هنگام تماشا چی هستید نگاه می کنید اون هنگام دور و بر مریض همه شما جمع شدید نگاه می کنید و نحن اقربو الیه منکم ما نزدیک ترستیم به اون مریض از شما ولیکن لا تبصرون اما شما مارا نمی بینید فلولا اِنْ كُنْتُمْ غیر مَدِينِينَ این لولا اعادل بعد الاهد است اونجا لولا گفته شد شرط هنوز جزا نیامده لذا خداوند در وسط جمله معترضه آورد دوباره میخواد جزا را ذکر بکنه دور شده دوباره شرط را ذکر بیکنند فلولا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ اگر شما غیر مدنین هستید جزا داده شوید اگر قیامتی نیست خب چرا بر نمیگردانید ترجعونا بر نمیگردان روح را نفس را این کنتم صادقین اگر شما راست میگویید شما نمیتونید برگردانید نفس انسان پرواز میکنه روحش پرواز میکنه هیچ کاری از دست شما ورسه دکترها جراحا متخصصان نمیش. اون وقت انسان روحش کے پرواز بکنه انسان از سه حال خالی نیست یکی از این سه انسان میشه فاما ان من المقربین دوباره از حالت اجمالی هر سه گروه اما با تعبیر دیگر فاما ان من المقربین اما اگر این انسان از مقربان باشد از خاصان خدا باشد فروح و ریحان و جنت نعیم فروح یعنی فله روح برای این انسان راحتاس و ريحاناس انواع خشبویها و معطرها و جنت نعیم و جنتی کسراپا نعمتاس برای این انسان هاس انسان مقرب خاص و اما ان كان من اصحاب اليمين الله می فرماید اما اگر این انسان از اصحاب الیمین باشد از دست راستی ها باشد از اونهایی که نام اعمال به دست راست می گيرد فسلام لك من اصحاب اليمين یقال اونجا بهش گفته میشه سلام الک یعنی سلام بتو ای مسلمان ای مؤمن من اصحاب الیمین چون از اصحاب یمین هستی از سوی خداوند سلام بهش گفته میشه یعنی از هر آفت در سلامتی از هر مشکل و خطر در امانی فسلام الک من اصحاب الیمین و اما ان کان من المكذبین الضالین اما اگر انسان از اصحاب الشمال باشد از اونهای باشد که دست راست دست چپش اعمالنامه میگیرد اگر باشد من المكذبین الضالین از اون انسانهایی که تکذیب کردن انبیاء را تکذیب کردن قرآن را تکذیب کردن توحید را از اون انسانهای گمراه باشد فنزل من حمیم برای اون انسان هم پذیرایی هست مهمانی هست اما مهمانیش چیه من حمیم با آبجوش بابجوش پذیرای مش الله نجات بده و تسلیت و جحیم این انسان وارد جهنم میشه به جهنم او را به او انسان گفته میشه ان هذا له حق اليقين ای انسان این حق بود و یقینی بود یا ای انسان در این دنیا است الله می فرماید این احوالی که بیان کردیم این احوالی که گفتیم حق و یقینی هست یعنی راست واقع واقیت داره و یقینی هست شکی در وقوع این احوال برای شما در روز قیامت نیست پس سکار کن تو این انسان فسبح بسم ربک العظیم یعنی ذات پروردگارت را نام پروردگارت را از تمام شرکا از تمام عیوب از فرزند و دختر از بقیه نسبتهای ناروایی که مردم دنیا به امیدان تو پاک بدان فسبح پاک بدن پاک دانستان خودش توحید است خدا را از شریک پاک دانستان توهیده خدا را از زن و فرزند پاک دانستان توحید است. پاک بدن نام رب ترا اون رب عظیم اون رب بزرگ و بلند و بالا را صدق الله مولانا العباد.